بسم الله الرحمن الرحیم اولین بند از آن الله اکبره همزه رو دقت کنیم خوب بگیم ا ا ا ا ا. الله چون قبل از لام الله فتحه است درشت میشه تغدیز میشه الله نشه الله کاف اکبر خوب بگیم اک اک. الله اکبر الله این همزه وسط بینش هست وقت خونده نمیشه حرکت قبلی وصل میشه اکبر الله برل نه برل نه بر الله دقت بکنیم الله اکبر, اکبر الله اکبر, اکبر. اکبر الله اکبر الله اکبر بس کافا چیزی میگیم میگیم اک اک آفرین. الله الله الله ها همزه‌ش هم دروش نگیم اول نه الله ال... الله الله الله روشم دروش هم